دور بر برفت و دلشدگان را خبر نکرد یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد یا وقت من طریق مروت فرو گذاشت یا او به شاه را به طریقت گذر نکرد گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد؟ تو خیمه که مرغ دلبی قرار من سودای دام عاشقی از سر بدر نکر هر کس که دید روی تو بوسید چشم من کاری که کرد دیده من بی نظر نکر من ایستاد تا کنمش جان فدا تو شم او خودگذر به ما چون نسیم سهر نکر